بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و و صحبه اجمعین اما بعد دومین درس هست از درسای از سوره یوسف علیه الصلاۃ و السلام همه اون چیزایی که در زندگی ما بهش نیاز داریم در این سوره الله چکیده گفته اون مشکلات نوع برخورد ما تعامل ما چنانچه در جلسه گذشته داشتیم جایی که به ما اتهام میزنن و پای محکمه و قضاوت ما رو میکشونن جایی بازجوی و بازپرسیه جایی اتهام و تحمد زنیه راه خلاص و نجات و راهی از هر نوع تهمت و بهتان صادق بودن مخلص بودن رعایت و مراقبت الهی انسان همیشه باید مراقب اعمال خودش باشه و در مقابل اون اشتباهی که ازش سر میزنه توبه بکنه و قال الملك اتوني به آیه 54 این بار دومی هست که فرعون تقاضا میکنه خواهش میکنه که یوسف بیاد یاریش بده در حکومت داریش بار اول اونجایی که خواب رو تعبیر کرد گفتید که خوابش واقعا درسته و قال الملك اتوني به آیه 50 آیه 54 باز دوباره که یوسف امتنا می‌ورزه میگه یوسف میگه بفرست به پیش اون زنا که چرا ما به زندان انداختن پرونده رو باز کن از خودش مطمئن یوسف سخن اون زنا که میشنوه پادشاه اون حسن زنی که داشته نسبت به یوسف علمی که پیدا کرده بهش تبدیل به یقین میشه الان دیگه باورش قطعی شده خواب را تعبیر کرد اول ابتدا خواب را تعبیر میکنه و بعدم میاد تحقیق میکنه دربارش مهر بر صدقه راستگویی یوسف میزنند دیگه این شخص نمیشه از دست داد. باید این نخبه را گرفت باید این شخص ازش کمک بگیریم با قال الملک اتونه به بیارید پیش من از سخلص حول نفسی خاص خودم قرار بدم از سخلص حول این شخص بیاد تمام زمام امور پادشاهی من را به عهده بگیره بیاد کل کارام بهش بدم این واقعا این شخص این لیاقت رو داره این شرف رو داره سوال اینجاست این لیاقت این مقامه یوسف برای رسیدن به اون تلاش کرد یا نکرد یعنی یوسف برنامه ریزی داشت که به تخت پادشاهی امپراتوری مصر برسه نه والله خودش میگرفت خودش رو تو چا بندازه خودش رفت میگه که بگن که منو بفروشید چی بود الله چی میخواد بهمون به بگه زمام امور پادشاهی و حکومت اون کسانی که در رأسن الله تعیین میکنه که کی باشه کی نباشه اون وقتی که تاریخشون رو تمام بشه الله کنارش رو می‌ذاره ملک مولا الله برای کسی که بخواد میده الله تعیین میکنه. جای مردم عجله میکنه. جای مردم عجله میکنه. الله در این سوره بهمون درس میده عجله نکنید در عوض کردن با دست خودتون. خودتون رو اول عوض بکنید، اصلاح بکنید. ما خودمون که اصلاح شدیم، جامعه اصلاح میشه، جامعه که اصلاح شد الگو میشه، مردم درس میگیرن، عبرت میگیرن. حکومتم اصلاح میشه، مجبور میشه اصلاح بشه چون راهی در تسلط و چیره شدن بر مردم نداره. درس دیگری که در این جا هست، بحث یوسف نخبه است. یک عالمه به تمام معنا، یک عامل مخلصی برای الله به تمام معنا ما نمیدونیم الان این پادشاه مسلمان شده نشده ما کاری به اسلامش نداریم اون چیزی که از این داستان برداشت میتونیم بکنیم اینه که برای اجرای عدالت داره استعانت و کمک میجوی پادشاه از این پیغمبر برای کمک میجویه بیا تو مرا یاری بده سوال اینجاست آیا این نخبه اینجا خودشو می‌بازه آیا اینجا این نخبه اسیر فرعون میشه؟ اگر کافره چون همه مفسرین میگن دلالتی بر اسلام پادشاه نبوده اون پادشاه مصر شکی درش نیست که این پیغمبر الهی نمیاد تابع اون کافر در ظلمش بشه، ظلمشو تایید بکنه. شکی نیست که ازش خاصه ناروایی اشتباهی داشته باشه. کسی که اینچنی در جلوی زلیخا که صاحبش بود ایستاد، ایستادگی کرد، زندان شد، تسلیم نشد. میاد اینجا تسلیم میشه؟ نه تسلیم نمیشه. این سخن، این ارشاد الهی به تمامی نخبگان، اگر گروهی مؤسسه ای جماعتی اومدن ازشون حمایت کردند منصبی بهشون دادن، خودشونو رو دیکته بهش نکنه که بش دیکتاتور هر چی بهش تزریق بکنن هر چی بهش گفتن املا کردن همون بشه سخنگوی اونها بشه این درس به ما درس یوسف پیغمبر میبینیم تابع هوای نفسش نمیشه تابع ترسش نمیشه نورو میترسونن به زندان تابع نمیشه این نهایت تقوا و رعایت الهیه اول و آخر زندگیمون زندگی ما باید الله باشه الله ناظر بر ماست رعایت الهی اگر رعایت الهی شد، عنایت الهی نصیب ما میشه این دو با هم دیگه گره خورده این عنایتی که نصیب یوسف شده از اون رئایته هست در دلش هم نیومد که قصدی بدی به زن عزیز مصر داشته باشه قصی هم نیومد چون کمال ایمان را داشت رعایت الهی این رئایته سبب این عنایت الهی شده که اینجا به این پست و مقام برسه الله تو یه چیزی میخوای؟ الله چیز دیگه میخواد اینها رقم ها هست در زندگی ما میخوره دست منو شما نیست تو تصمیم میگیری برای خودت برای الله یه چیز دیگه برای تصمیم میگیره این درس ها ما قشنگ در سوره یوسف داری. الله داره برای یوسف تصمیم میگیره ورق میزنه و هی امتحان میاد برای اون خالص شدن برای اون انتخاب شدن برای اون پاک شدن قال الملك اتونی بی استخلص و نفسی فلم ما کلمه قال انك اليوم لدينا ماكين دوتا جمله فلما كلمه بعض المفسرين گفتن اینجا اون پادشاه مصر که صحبت کرد با یوسف نه بحث از پادشاه مصر نیست بیشتر اینجا به این میخوره که یوسف میاد اینجا با اون پادشاه مصر حرف میزنه فلما كلمه او اومد وقتی که یوسف با سخن گفت آدم راستو اصلا از زبانش مشخصه شما میرید مثلا بنگاه ماشینی یه جایی خرید یه چیزی بکنید کالای قال بنگاه ماشین مثلا زدن چون بیشتر سر آدم شیر میره اینقدر به چرخ این ماشین فلونه سفر کسی سوار نشوده شاسی زده نشده همون که این علائمر داره بهت میگه یعنی تو فورا تو ذنتمه این زبان چربش دارد به حتما شاسی ضربه خورده که میگه شاسی ضربه نخورده از زبانش مشخصه از اون چرو زبانش از اون شیرین زبانش مشخصی که این داره یه چیزی برات قایم میکنه حالا هر کسی اینطوری نیست، چ فکر نکنید که تعمیم بده. ولی معمولاً این از صدق زبان را در اون رفتار و گویهش شخص آدم میتونونه درک بکنه زیرت باشید سرح تو کسی شیر نممال با چرو زبانیش اینکه یه کالاب داره بهتون عرضه میده ماشین اینطور یا این باور نکنید تا این که معاینه بکنید تا این که پیش خبیری ببریدی کسی که آشناس با اون نه که بعد بیاد معاینه را صورت بگیرید اون باور تبدیل بشه به تصدیق و معامله صورت بگیره در همون مجلس بدون اینکه معاینه بکنید نه در امور دنیاتون زیرک باشید هوشیار باشید ما از سادگیمون میخوریم شخص حالا اعتماد تو بازارم شاید بیشتر شما در بازار بودید و دیدید اعتماد میکنید یک بار دو بار بعد بار سوم زمینیتون میزنه زیادن این نوع اشخاص خب اینجا پادشاه وقتی که سخن یوسف رو میشنوه صدق در گفتار آدم صادق از گفتارش مشخصه قلبش آرام میگرده اون پادشاه اینو ما بدونیم یعنی اون اخلاص ما سبب میشه زبان ما هم درست بشه رفتار ما درست بشه الله علامت‌ها رو گذاشته این یاداوری به من و شماست اخلاص در رفتار ما با الله تعامل ما با مردم اصلاح میکنه قال انك اليوم ای یوسف انک تو امروز الیوم لدینا نزد ما مکینون امین دو تا صفات بهش میده. اول مکانت جایگاه مکین مکینی یعنی اینکه که زمام امور پادشاهی من به دست تو تو دیگه همه کاره دولته منی مکینی سلطه ای امپراتوری مست به دست توست یوسف مکین خلاص همه کاره مکین و امین دوباره بر بگردید به آن دو تا کلمه که من گفتم رعایت و عنایت مکینه چون مکینه تسلط بهش داده از چی بهش رسیده؟ از اون رعایت الهی همین الان الله این عنایت رو بهش داده و در ازای این عنایت چون عنایت الهی مشمول حالش شده الله این عنایت را شمولش داده که این عنایت به مردمم بر بگرده مسئول مردمم بشه کسی که راयत الهی رو را داشته باشه و عنایت الهی رو داشته باشه مسلما در حکم و قضاوت بر مردم در تصرف در امورشون جایگاه رو داره مکانات رو داره امینی ایوسف ای نزما امینی وقتی که امین شدی دیگه مسئول سپرده ها یک وزارت مالی تحویل تو یعنی کل اون مساله مالی ما به تو اطمینان داریم دیگه دست تو ای خب این گفتند این جایگاه که بعد از این ابتلاها و امتحانات یوسف بهش میرسه کلید تمامی امور بهش سپرده شده و بهش اعتماد شده امینه یعنی معتمد در هر امری که امضا بکنه معتمد تمام شد مهر امضای آخری رو یوسف میزنه نمینی در انما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علي خب الان که تو به من دادی این پست من منصب سلطه دادی امانت و رعایت دادی بر مال مردم بر امپراتوری بر خزینه مصر پس مرا مسئول امور مالی امپراتوری کن امپراتوری مثل که امپراتوری دنیا بود در اون موقع عبر قدرت بود مصر با اون رودینیلی که از اونجا رد میشد با اون کش اون موقع که نف نبود گاز نبود تجارت اون روز خوردن و آشامیدن بود انگور و میوه و اینا دوشابش میگرفتن شیرش میگرفتن گندم و بارد و همه اینها از کجا تامین میشد از مصر خزائن الارض اونجا بود در اون دوران یوسف خب یوسف علیه السلام میگه پس من شما در نظر بگیرید برادرانش از سرزمین شام از عراق بلند میشن در قحتی و خوشحالی میان مصر برای خریدن و گرفتن آذوقه خب خزائن زمینه خزینه های زمین گفتیم از انواع اولوفه و از انواع حبوبات همه از مصری ها بود این گفتم قبلا اشاره کردم اندوختگی رو الله بهمون میرسونه ارزشش خزینه اصلی اینه بحث اهمیت به کشاورزی و دامداری و این مسائل که مردم ازش غافل نشن چون چرخش زندگی مردم رو اینه انسان به خاطر از زمینه انسان که از مواد شیمیایی تغذیه نمیشه از زمین تغذیه میشه اهمیت دادم این دوتا سنف خیلی مهمه خب یوسف علیه السلام میگه که خب پس مشکلی نیست مادامی که تو به من اهلیت دادی بهم به اعتماد داری من بر خزانه داری حفیزم و علیمم حفیزم یعنی چه حفیزم؟ حفیز از نهایت حفظ میاد از نهایت رعایت میاد من حقوق همه اشخاص را اون چنان چه لیاقتش دارن حقوقشون رو حفظ میکنم رعایت در امانت نهایت رعایت رو میکنم اون مسئولیتی که بهم هم سپرده شده از حق فقراء مساکین اینه که هر شخص الان میاد که چگونه تقسیم میکنه بر اساس هر شطوری چقدر اون فرد میگیره بر اساس خانوادهش سرشماری میکنه قشخاص میفرسته بعدم نظارت میکنه حفیظه پسی که بهش میده پادشاهی این نیست که فقط ای مردم شما غلاط رو بیارید پیش من من اندوخته بکنم فقط اینجا انباردار بشم انباردار نیست سررسی میکنه میره کشاورز بیبینه چه کار میکنه چه کار نمیکنه کشتش چطوره نوع کشتش گندومش میسنجه توش میسنجه عدسش نخودش نظارت داره غلغشی نکنن نوع اندوختگیشون بر اساسی که اون چیزی گفتن تو خوشه باشه خود گندم نباشه. این حفظه اینطوری زمان امور رو به دست گرفت یوسف چون میدونست اهلییتش رو داره و باید نظارت داشته باشه. نظارت گفتم فقط ظارت مالی نیست نظارت کاری بود بر اون کشاورها و دامدار و تمامی اون تجاری که بودن این حفیظ یعنی چینی چیزی در خودش می که من میتونم با اون پشت کار و پشتبانه ای که دارم از حق این مسئولیت برمیام اننی حفیظ رو علیب منم دانام حساب کتاب بلدم کسی نمیتونه گول بده این اهمیت علم، علم حساب و کتاب بلد بود پدرش یادش داده بود از بچگی دنیاس ما بادیات بگیریم همونطور که بچه‌مون دین بادیات میگیره قرآن بادیات میگیره دنیا رو بادیات بگیره باید بلد باشهش زیست شناسی چیه جغرافیا چیه ریاضی چیه بچه‌مون باید اهمیت بدیم به این علوم طبیعی علوم تجربی باید یاد بگیره حساب و کتاب سرش کلا میره فردا کی هست از ما که مراوغه نداره تجارت نداره خرید و فروش و معامله نداره باید یاد بگیره اون بچه‌مون نه اینکه بچه‌مون تنبله علاقه به ریاضی نداره نه باید یاد بگیره فردا ارسمیرا سرسمیناس همش پایش حساب و کتاب ریاضیاته اس این همیت شرف اون علمی که یوسف داره و میگه که من از این علم برخوردارم دارم یوسف در خودش این جایگاه را میبینه که میگه نهی که خودش بره به تازه به این منصب، این منصب پادشاه به اشداده قبل از اینکه از این حرفه‌ای که داره یاد بکنه. این دوتا حرفه، این دوتا حرفه بلد بود یوسف، هم حساب و کتاب، هم نظارت با اون پشتکاری که داشت و مددی که میشه از سوی الهی در اون قضاوت بر مردم. خب این جایگاه رو در خودش دیدی بود به خاطر همین زمام اون را به عهده میگیره و الله چنین میگه، میگه و كذلك ما کننا این چنین بود که ما تمکین دادیم به که یوسف را به شهرخونه، خزانه ارض دقتسه دیگه, دیگه، خزینه های دنیا دست یوسف بود. این چنین به یوسف تمکین دادیم که تمامی امور به دست یوسف به شهرخونه. کجا بود؟ اون کسی که تو چاهان داختنش و فروختنش، الان شده همه کاره امپراتوری مصر، همه کاره ای دنیا در اون عصر خودش. 1900 سال قبل از موسا علیسان این چیز هلوهوشه میان 3500 سال تا 4000 سال قبل که قصهش همچنان جاویدانه و دقیق الله ازش یاد میکنه از اون علم غیبش مکنه لیوسف فی الارض یتبوه منها حيث و یشع منها حيث حیث و یعنی بر خزینه های دنیا تمکینش دادیم که اونطوری که میدونه و میتونه نظارت داشته باشه حيث و الله میگه حیث و یشع که خودش مصلحت میدونه حسین علما از این قسمت برداشت میکنن که این مطلب رو الله بهش سپرده چون میدونه یوسف از پس این کار برمیاد چون باید کشت و می میدادن و مهارت ها رو باید بالا می برد در کشاورزی چون قرار خوشایند بشه مهارت ها رو اومد بالا برد اومد حالا به قول خودمون تکنسین ها اون کسانی که بتونن همکاری بکنن در بالا بردن کشت اومد از آنها کمک خواست اینها جریانی هست که در پادشاهی و امپراتوری مثل رخ میده. نصیب و به رحمتی نه من نشا نصیب و به رحمتی نه من نشا این رحمت. شما اگر به اون زاویه بدبینی نگاه می با اون دید تنگ نگاه کردید چرا این بچه بدبخت تو چه انداخته بشه فروخته بشه زنابیان مکر دسیسه براش بکنن اینقدر نه الان گفتم جریان داره عوض میشه بعد از این صفحه جز جدیدی که شروع شده بعد از آی پنج دگه جریان داره عوض میشه. الان یوسف الله داره میگه نمونه از رحمت من بر روی زمین نمونه از رحمت من روی زمینه این عبرت برای هر پادشاهی هر وزیری هر مدیری برای هر مسئولی نمونه است رحمت باشین برای مردم هم غم مردم داشته باشی یوسف همه غم مردم رو داشت میرفت همکاری باشون میکرد یاریشون میداد میرفت نصیحتشون می‌کرد بهشون میکرد نظارت بر کارشون می‌کرد کمکشون میکرد اگر کسی لازم داشتن که کمکشون بکنه از اون حرفه کش, یادشون میداد این نهایت هست. لطف الهی در حق بندگانه الله میخواد بگه ما بندگان رو مرراها نکردیم. چهار هزار سال قبل امپراتوری بود ما برای که مردم در اون خوشالی بدبخت نشن پیامبری را فرستادی و این چنین این پیامبر را بر سر اونها گذاشتیم این نمونه از رحمت الهیه یوسف نمونه از رحمت الهی بر سر مردم این چینین بود که به این جایگاه رسید که مردم در اون قحط سالی بر روی زمین نابود نشند خار نشن. این نمونه از رحمت الهی. پس ها برای ما رحمت الله خیرخواه ماست. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله بارها گفتم در دعای تهجدش میگفت در دعای وجهت که ما یک قسمتش فقط حبزین وقتیاشو حبزینسی. آخرش میگه رسول الله صلی الله علیه و آله در دعای وجهتش وجهت وجل انت ترى السماوات ولا بعد انجا میگه قل خیر و بيديك وشر ليس اليك. بار الله ها تمامی اموری که بر من میگذره خیره همش به دست توست و شر ليس الیک. شر از تو دوره. شر از طرف تو نیست. شر همه از سوی خودمون بندگانه. که به ما کسبت ایدیکو. الله در قرآن بارها به با ما میگه از خودتونه شری که می یاد از خودتونه الله خیرخواه بندگانه و این نمونه از خیرخواهی الله به بندگانش رو برای ما یاد میکنه برای م... کافرش و مسلمانش رحمت الله خاص مؤمن نیست و رحمت و وسعت کلشه همه جا گرفت الان یوسف پیغمبر الهی رحمتی شده برای مؤمنش و کافرش که دنیا برش تنگ نشه روزیش رو در دنیا داشته باشه این رحمت الهی که مشمول حال اونها شد ولا لا و اجر المحسنین اون کسی که محسن باشه در عبادت و طاعتش مراقبت الهی رو داشته باشه بداند که پاداشش زایه نمیشه از بین نمیره نابود نمیشه لا نوضیح غیر ممکنه یا اینکه مثلا یوسف تویی که آدم خوبی دینداری الله به این شرف رو میده کلید خزانه ها رو دستت میده یا به یک پستی منصبی تو رو میرسونه در این دنیا و یا اینکه الله اجر و پاداشت به اخرت برسه هدفت نباشه از اون علمت از اون تقواد از اون عبادتت هدفت نباشه که تو با این علمت به یک منصب دنیای برسی دنبال پست نباش کاری که انجام میدی لله باشه برای رضای الهی باشه و بدان این کاری که برای رضای الهی انجام میدی نابود نمیشه از بین نمی رهایا نمیشه ولا نضيعه اجر المحسنين کسیک به درجه احسان ما ست درجه داریم درجه اول درجه اسلام درجه دوم درجه ایمان و درجه سوم درجه احسان این چیزی که ما در حدیث جبرئیل داریم حدیث جبرئیل اینه که جبرئیل علیه السلام به شکل یک از اصحاب با سفید میپوشه میاد زانه زانی رسول الله صلی الله علیه و میشینه صحابه نمیدونن فکر میکنن یک شخص عادیه غریب است اومده مسافره میاد زانه زانی نمیشه نمیگه یا رسول الله. هر سه سوالاتی درم جواب میدی گفت بله. زانی وزانی نشست ترجمه صحابه چرا زانی وزانی همه کنجکاوانه نگاه میکنن. سوال میپرسه میگه مال اسلام اسلام چیه؟ قال اسلام انت تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه شهادتين نماز روزه حج بعد میگه و مال ایمان؟ ایمان چیه بعد؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخره والقدر خيره وشرره. ایمان به ملائکه و ایمان به الله و ملائکه و کتابهای آسمانی و پیامبران و روز اخرت و قضا و قدر خیرش و شرش. قضا و قدر اجازه در سوره یوسف قشنگ داریم میبینیم. هر مصیبتی که میاد خیریه ترشه غذا و قدری که چه خیر باشه چه شر باشه رضایت در مقابل اون و ایمان بروز روز اوخره تن بازم در سوره یوسف داریم برادرارش مراقبت الهی را نداشتن در مقابل حساب و کتابی که خواهن شد در مقابل ظالمی که برادرشون روا داشتن خوب این هم درس‌ها این مرتبه ایمان و مرتبه احسان بالاتر از ایمانه نهایت را قالا من احسان قال ان تعبد الله کانک ترا فان لم تكن ترا فهو یرا مراقبت الهی نهایت الهی. رعایت الهی که گفتیم رعایت با تا عنایت بیاد اینجا الله داره میگه در ازای رعایتتونه که می يقول. احفظ الله يحفظك رسول الله بن الله عليه عباس مني الله رحفظك انت رحفظك انه مرتبه احسان انك تو عبادات بكني الله انك جلو وخوتك مي بني, بني. ويقر تعبد الله كأنك تراه مثل انك الله رمي بني فاللم تكن ترى به این درجه برسی پس او را ناظر بر خودت بدان مثل اینکه الله داره نگاهت میکنه ناظر بر عمل خودت این دیگه مرتبه احسان بولاترین مرتبه هست کسانی که اهل سند در حلقات علمی نمی نمینشینند به این رتبه نمیرسن تمعش نم نداشته باشند چون این رتبه رتبه شرف علمیه یعنی با علم به شریعت انسان به اینجا رسه چون نمیتونه شخص رعایت الله رو در عبادت داشته باشه نماز رکوع سجودش خوب بشه الله رو مراقبه خودش ندونه نمیشه باید یاد بگیره بیاد ارکان نماز و واجبات نماز رو یاد بگیره مرتبه احسان مرتبه زحمته قالت الاعراب و قل لم تؤمنو ولكن قولوا اسلمنا اعراب گفتن ما ایمان آوردیم حالت اعراب و آمنا ما مؤمن شدیم الله میگه قل لم تؤمنوا ایمان نداری شما به مرتبه ایمان نرسیدید ایمان برتر از اسلامه قلم قل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا بگید ما مسلمان شدیم چرا چون اسلام ظاهره عرب و الله میگه اعراب اشد كفرا و نفاقا نفاق فکفر عرب زیاده چرا چون جهل دارن جهل سببه این میشه انسان در ظلم بیفته در نفاق بیفته این مرتبه اسلامه وقتی که مردم از دست از زبان در امان نباشه المس مسلمان مسلمان زبان وای اصل اسلام اینه مردم از زبان تو از دست در امام باشن ولی با این وجود این مرتبه اسلام هم در اونها در اعراب زعیف بود کسی از دستشون در امان نبود اعرابی می یقی رسول الله صلی الله علیه و سلم می گرفت این نهایت جهلش این مرتبه اسلامه ظاهر ظاهر اسلام شعائر رو انجام بده نمازشو بخونه ولی که مرتبه ایمان بالاتر از اونه انسان حق الله را در اون عبادت ادا بکنه حداقل اون واجبه اون نماز درست بخونه اگه سنت نمیخونیم مرتبه احسان اضافه بر اون واجب انجام دادنه یعنی از اون دایره اقتصادی در اومدی اومدی به افزایش دادن اون و جبران کردن اون نقص الله دار قرام يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مرتبه إسلام ظلم يكون مثل حراب جهل نميدونه غنوه ميكونه معسياد ميكونه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد مرتبه إيمان اقتصاد بيكونه اكتفاه ميكونه بهم معنش فرضا ما بخنام روزا ما كافية ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات با صدقه دادن، با نمازهای نافله خوندن، تهجد خوندن، تراویح خوندن، سبقت بیگیره. میشه تا به این درجه احسانه. الله از ما این میخوان. این درجه احسان، الله میگه عجر محسنین، کسانی که موازبت دارن بر از کارشون، نمازهای سنتشون، روزه های نافلهشون، احسان به پدر مادرشون، نمیدونم تباع جناعز و غیر، از حقوق مسلمان ها، این کسان اجر و پاداششون هنگفته، نمیشه. ولا اجر آخرات خیر و اجر الله برای کسانی که ایمان وردن و متقی شدن بسیاره در روز آخرت بسیار در روز آخرت اینجا الله بهمون میگه که مرتبه تقوا شرفی بالاتر از مرتبه ایمان انسان اکتفا نکنه بر اینکه مجرد یک بنده نمازخونی باشه روزگیری باشه بلکه یک بنده مخلص و خالص و محسن و خوب الهی که الله بهش افتخار بکنه رسول الله صلی الله علیه و وسلم میفرمایند لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حت احبه بنده همچنان با نافله با کارهای سنت، نمازهای سنت و از کار، اوراد روزانه همچنان به من نزدیک میشه تا اینکه او را دوست داشته باشم و دوستی الله کالای گرانیه مثل بهشت قرآن صلی علیه میگه الا ان الله غالیه الا این سلعت الله غالیه بهشت بدون رضایت الهی و بدون محبت الهی ما نمیتونیم بهش برسیم گرونه قیمتش گرونه چون باید از وقتمون مایه بذاریم از خوابمون بزنیم تا به اون رتبه برسیم به اون رتبه که رسیدیم الله هست به اون بنداش در آسمان ها افتخار میکند میگوید ای جبرئیل او را صدا میزند ای جبرئیل من فرانی رو دوست دارم او را دوست داشته باش جبرئیل هم صدا میزد ندای میزنه به آسمان ها به کسانی که در آسمان از ملائکه ای ملائکه الله حد میگوید الله هست میگوید پلانی را دوست دارم او را دوست داشته باشید اونجا هست که الله میگوید محبت این بنده را در دل آدمیان بر روی زمین بگذارید محبت اینطوری حاصل میشه خوبی اینطوری حاصل میشه یوسف اگر این درجه و منزلت میبینید اینطوری بود سابقون بالخیرات بود محسن بود به درجه احسان رسیده بود به درجه تقوا رسیده بود بالاتر از اون درجه ایمانیش اکتفا نکرده بود فقط به اون درجه ایمانش بلکه پله بالاتر درجه احسان رفته بود صلی الله محمد و آل محمد